بسم الله الرحمن الرحیم سخنرانی مرحوم آیت الله حاج میرزا علی فلسفی موضوع سخنرانی امامت جلسه شانزدهم هم اعوض بالله السمی العلیم من الشیفان اقواجین بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین نسل الله علی سیدنا و نبینا و شفیع زنوبنا القاسم محمد و علی اهل بیت طیبین و طاهرین و لعنت الله علی اعداهم اجمعین الهیان مدین قبلن ارز کردیم هر مالی که از کسی دست به کسی برسند این مال اگر نقصی پیدا کند یا تلف شود این شخص زامن است مگر اینکه مالی باشد که امانت باشد امانت شرعی یا امانت مالکی اگر مالک چیزی را پیش کسی امانت گذاشت یا اگر شارع به دستور شارع مالی در دست کسی به عنوان امانت بود اگر مالی امانت مالکی یا امانت شرعی در دست کسی بود اگر این مال رو تعدی و تفرید نکرده باشد تلف بشود زامن نیست در مورد مالی را که به عنوان امانت در دست کسی است حالا یا مالک امانت گذاشته یا به دستور شاره این مال در دست ای است هست این مال رو باید نگهداری کند و حفظ کند اگر تعدی نکرد و تفریت و کوتاهی نکرد و اتفاقا طلب شد ای زامن نیست و اما اگر تعدی کرد و تفریت کرد زامن است. و اما مالی را که نه مالک در دسته ای امانت گذاشته نه شارع امر فرموده به امانتش مالی که در دسته ای میاد اگر تلف بشه زامنه میخواد تعدی کرده باشه میخواد تعدی نکرده باشه دو مطلبش رو عرض میکنه یه چیزهایی رو مالک به انسان میده مالک مال مالی رو به انسان میده به عنوان امانت حالا یه وقتی مالی رو پیش ما امانت میذاره میگه این عوام اینجا امانت باشه پیش تو من برم وضه بگیرم بیام این امانت هست امانت مالکی یا یک کیسه پول به من میده میگه این کیسه پول پیش تو امانت باشه من میرم سفر و بر میام ازت میگیرم این امانت هست امانت مالکیست یعنی مالک این مال رو امانت پیش ما گذاشته این اصلا تو کتاب فقه به عنوان عقد است ودیعه و, و امانت همینه چیزی رو میذارم پیش شما که ای رو برای من نگهداری کنی، من برگردم بیام بگیرم این عقد ودی هست یه جوره یه است که نه به عنوان ودیعه نیست ولیکن اینو این رو مالک میذاره پیش انسان و این مال در دسته ای امانته مثلا فرمایید من به شما میگم این عباتون رو به من بدید که من دوش کنم این اسمش آریه است. ودیعه معناش اینست که این مال پیش من امانت حق استفاده کردن ازش ندارم اما آریه عبارت این است که چیزی رو بگیرم که از او استفاده کنم میام مثلا در خانه همسایه میگم اون مهمون داریم ما اون دیگتونو به ما بدین امروز میخوام پلو بفزین خب این دیگ رو که از او میگیرم استفاده میکنم ازش توش غذا میپزم ولی خود این دیگ رو مالک به من داده و خود این دیگ در دست من امانت امانت مالکی یعنی این معناش اینه که این پیش تو باشه و در دست تو باشه که ازش استفاده کنی و بعدم بیار چیزی را که کسی به کسی اجاره میده مثلا فرض بفرمایید میره در دکان یه دونه قالی اجاره میکنه مجلس داره یه دونه قالی اجاره میکنه و تو مجلسش ده روزه یا قالی اجاره میکنه مثلا فرض کنیم به 500 تومن اجاره خب این فرش رو مالک یعنی اون فرش فروش که اجاره میده ای رو میده به ای که استفاده کنه در مقابلش 500 تومن به اون مالک بده ولی این فرش در دسته ای امانت هست مالک داده دست ای که باشه پیش تو و استفاده کن ازش 500 تومنم به من بده و بعدنم در روز دیگه بیار پس بنابراین امانت مالکی یعنی مالی را که مالک به دست انسان داده یا برای نگهداری از او یا برای استفاده از او حالا استفاده وقت استفاده مجانی مثل آریه یه وقت استفاده با مثل اجاره این مالی که مالک به دست ما داده و با رضا و رغبت خودش به ما داده این مال در دست ما امانه امانت مالکی است. اگر ما در این مال تعدی و تفرید نکردیم و اتفاقا طلب شد ما زامن این مال نیستیم پولی رو به من داده بود که این رو براش نگه دارم منم آوردم گذاشتم توی صندوق درشم قفل کردم یک جای محفوظ خوب این رو نگهداری کردم اتفاقاً شبخانه آتش گرفت، پول و صندوق و هر چه سوخت، پولای بند خدام سوخت. اتفاقاً شب دوز آمد و این پول و صندوق و ماف صندوق رو همه رو برد. در حالتی که من از این پول کاملا نگهداری کرده بودم، از نظر جاش جای محفوظی بود، در خانرم رم بسته بودم، ولی دوزد اومده وا کرده و برده دیگه. اینجا من زامن نیستم اون آقایی که پول پیش من گذاشته نمیتونه بیاد بگه فلان قد پول داده بودم به تو امانت داده بودم حالا بیار پولامو بده میگم پولاتو دزد برده یا خانه من آتش گرفته و پولات تلف شده البته اگر او حرف منو قبول میکنه که هیچی واقعا میدونه که من راست میگم اما اگه احتمال میده شاید دروغ بگم باید برم پیش حاکم شد بینمون قضابت کنه و من قسم بخورم که این مال تلف شده حالا اونو نمیخوام بگم انا مقصود بنده این است که اگر کسی مالی را به عنوان امانت بیرست کسی داد اگر ای تعدی و تفریت نکرد تفریط یعنی چی؟ یعنی کوتاهیه در حفظش حفظ کردن هر مالی یه نحوه خاصیست و یه جای مناسبی داره جای حفظ پول تو صندوقه جای حفظ لباس مثلا فرض توی کمده یا یه گنجه هست و امثال اینها حالا اگر من دو یه کیسه پول ورده به من دوده من انداختم گوشه این تفرید کردم کوتاهی کردم در نگهداریش اگه تلف بشه یعنی شب دوز بیاد و ببره من زامنم پس باید امانت رو کوتاهی در حفظش نکنم پاچه که لباسی که به من داده برش نگه دارم جای لباس تو گنجه هست. توی کموده و امثال زالکه حالا من وردم بردم این دختان اتاق بچه های تونتون لغت میکنم این کوتاهی کردم در حفظ این پارچه اگر اتفاقا پارچه بسوزه یا اتفاقا دوز بیاد و اینو رو ببره من زامنم امانت رو در فرضی زامن نیستم که کوتاهی در حفظش نکنه این معنی تفریطه تعدیه یعنی چی؟ تعدیه معناش این است که زیاد روی کنم به اون مقداری که وظیفمه اکتفای به او نکنم زیاد روی بکنم امانت مثلا نرز میکنم امانت رو گفتیم همه الان معنا کردیم این بده نگهداری داده به من گفتیم این ابای من پیش تو باشه من میرم وضوع بگیرم بیام من دور داشتم ابا دوش کردم خب حق نداشتم حق دوش کردن عبا نداشتم حق پوشیدن این لباس رو نداشتم این به عنوان امانت به دست من داده اینو بر من نگه دار پس بنابراین در پوشیدن این لباس من تعدی کردم زیاد روی کردم حق نداشتم این کار رو بکنم اگه اتفاقا این بنده خدا خورده دیر کرد و منم حواسم پلا شد و زب اومد رو برد من زامنم من تعدی کردم اما اگر تعدی نکنم و تفرید نکنم و اتفاقا تلف بشه، ضامن نیستم. اگر فرض بفرمایید به اینکه یه دونه اسب جاره کردم یا یه قلاغ جاره کردم یا ماشین که بار ببرم، و معمولا یه دونه الاغ مثلا بنده که وارد نیستم فرض می‌کنیم 20 من بار باید و مثلا سی من گذاشتم، این تعذی کردم. زیاده روی کردم همین که تعدی کردم من متعدیم من مثل آدم قاسب حساب میشم ولو از این بار گذاشتن من روی این حیوان این حیوان صدمه نخورد ولی من زیاده روی کردم این ید من دیگه میشه ید قاسب از ید امانت دیگه بیرون میره تو امین نیستی تو خائنی مثل آدم قاسبی که به زور اسب مردم رو گرفته شبیه به او میشه پس بنابراین اگر اون مقداری که باید در یه جایی که نباید استفاده کنم مثل ودیعه امانت در جایی که نباید استفاده کنم اگر استفاده کردم تعدی کردم در جایی که باید استفاده کنم اگر زیاده از مقدار متعارفش استفاده کردم باید ت... از شاید زامنم و من تعدی کردم اگه کاس رو میگیرم که مثلا یا دیگ رو میگیرم که توش غذا بپزم خب این دیگه منفعت متعارفی داره توش غذا پختن پیدا خوب منم اگه غذا پختم تعدی نکردم اما اگه رو توش مثلا ارز میکنم یه مقداری نوک گوز انداختم که شروع کردم به استفاده هنگ خواستم ازش بکنم اون جایز نیست اگر پیدا کرد زامنم اگه ایبم پیدا نکرد اتفاقا دوز اومد بود بازم من زامنم چون ید من دیگه از ید امانت بیرون رفته من یاد خائنم این دست دست خیانت خیانتکاره و دست خیانت زامه. پس این هر مالی را که مالک به انسان اجازه داده و در اختیار انسان گذاشته و او رو موظف کرده که ای رو حفظ کن یا استفاده ازش هم ببر یا استفاده ازش نبر باید تعدی نکنم باید تفرید و کوتاهی در حفظش نکنم اگر تعدی کردم یعنی زیاده روی کردم اگر کوتاهی در حفظش کردم یعنی تفرید کردم من زامن اگه کسی مثلا فرض کنید خیاطه پارچه میارم میدم بهش بدوزه خب معمولا خیاتا یه گنجی دارن شب که میناخونه شون مثلا این پارچا رو میدون بدزش میکنم این همجور پارچه های مردم ویل کرده این ورون ورون میز غیر میز مشتری میاد تو دکون یه دن از این رو بر میره این زامنه و اما اگر نگهداری بکنه تحفظ بکنه اونجوری که باید پارچه نگهداری کنه بکنه اتفاقا دوز آمد یا اتفاقا مغازش آتش گرفت زامنه پس بنابراین این مطلب است. هر جا که مالک مالی را به انسان بدهد ده که از کند. یا استفاده ببرد یا نبرد تا مادامی که تعدی نکرده و کوتاهی در نگهداریشم نکرده اگر تلف بشود زامن نیست تلف بشود و اینا همه مسئله هاش با هم دیگه قاطی نشه نه تلف بکنه. تلف بشود نه تلف بکنه خیاته که ارز کردیم اگر توی داغ داغ رو گذاشت رو این پرت حواستش پرتفال هست پاچه سوزوند این زامنه این سوزونده این تلف کرده این گرچه آقای خوبی هم بوده خوب پاچه حفظش کرده ولی اطلاف کرده این اطلاف مسئله نیست اگر نظرتون باشه در اولی که شروع کردیم ارز کردیم سبب زمان یه وقت اطلافه یه وقت تلفه یه وقت تسبیب که حالا تسبیبش نگفتیم اطلاف کردن موجب زمانه ولی الان که از میکنیم تلف شدن یعنی مالی که خودش تلف بشه در دست من اگر من کوتاهی کردم در نگهداریش یا تعدی کردم اگرچه من تلف نکردم خودش تلف شده ولی من زامنم. ولی اگر کوتاهی نکردم و نگهداری کردم و تعدی نکردم اگه تلف بشه من زامن نیستم اما اگه اطلاف بکنم زامنم. خیلی خوب اینا چی شده ها؟ اینا مالی بود که مالک به دست انسان داده بود. قسم بناورین ودیعه، آریه، اجاره و امثال زالک، اینا مالی است که مالک به عنوان امانت به دست من داده. باید این مال در دست من باشه، حالا اگر کوتاهی نکردم در نگهداریش و زیاده رویم نکردم، زامن نیستم. اما یه مده از که شارع به انسان اجازه داده و به دستور شارع این مال در دست انسان امانته. سلام فرض بفرمایید اگر باد زد از خونه همسایه یه پیراهنی که انداخته بودن روی بند تناب که خوش بشه باد زد انداختونه همسایه. این مال رو مالک نداده به دست من ولی شارع به من میگه این مال در دست تو امانتهی که فوراً به صاحبش برسد اگه من نگهداری کردم تعدی و تفریط نکردم اگه اتفاقاً تلف شد زامن نیستم ولی اگه کوتاهی کنم در نگهداریش زامن پس مالی رو که باد میاره یا سیل میاره اگر من کوتاهی نکنم زامن نیستم اگر تلف بشه. و همچنین اگر مالی رو از مالک میگیرم ولی خود مالک خبر نداره و اشتباهن به من میده مثلا ارز میکنم اگر فرض بفرمایید یه چیزی از بنده خدای پیران خریدم این اشتباهاً دو تا پیران تو همدیست میده به من اشتباه کرده دو جنسه اشتباه... این دومیش دو پیش من امانته اگه بردم خونه و دیدم دوتا تا پیرانه این بحکم شارع در دست من امانت که خبر نداشت که امانت بذاره این مال در دست من بحکم شارع امانته اگه کوتاهی در نگهداریش نکنم تعدی و تفرید نکنم یه اخی میگم خب اینم بپوشم میبینم کدوم یکی بهتره تا پوشیدم در ید من میشه ید غاصه. اگر کوتاهی نکنم و تعدی و تفرید نکنم اگر اتفاقا تلف بشه من زامن نیست موارد گم شده که انسان چیزی پیدا میکنه تو کوچه و جایز براش برداشتن چون بعضی از جاها جایز نیست برداشتن مثل گم شده در حرم در حرم مکه. این کسی اونجا چیزی پیدا کنه حق نداره برداره و اما اگر گم شده تو کوچه و بازار خودمونه اگه چیزی پیدا کنه حق داره برداره شرعن یعنی براش جایزه ولی حالا مکروه هم هست بعضی از جاهاش ولی شرعن براش جایزه حالا این مال در دست ای تا یه سال امانت به حکم شاره این مالو باید نگه داری یه سال بگردی صاحبشو پیدا کنی اگر پیدا نشد اون وقت وظیفت چی عمل کنی در ظرف این یه سال که من میگردم صاحبشو پیدا کنم این مال لسل من امانته اگر کوتاهی نکنم در نگهداریش و تعدی و تفریط نکنم زامن نیستم اگر تلف بشه. یه شبه کردیم یه تصبیح پیدا میکنم یه آویزون میکنم به میخ دیوار مكتش. این تو اعتباری کردم تفرید کردم جای حفظ مال مردم که دیوار مسجد نیست مال مردم رو, دوار رو حفظ کنم تصفیه پیدا کردم حالا تصفیه مثلا قیمتی یوس یا یه چیز دیگه آوردم بالا آویزون کردم این میخ بازار اینکه میره من کوتاهی کردم در نگهداری ایمان زامنم و اما اگر مال گم شده ای را کوتاهی در حفظش نکردم و نگهداری کردم فاتفاقا طلب شد و از بین رفت من زامن نیستم مثل اینکه حالا بس تا بعد الله اکبر